بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازم ترابون نهایت ای پیامبر چون زنان را طلاق دهید، پس ایشان را در عیده ایشان طلاق دهید و عیده را دقیق حساب کنید و از خداوند پروردگار خیش بترسید ایشان را از خانه بیرون نکنید و خودشان نیز در دوران عیده بیرون نروند مگر اینکه عمل فحشا را به صورت آشکاری مرتکب شده باشند، این حدود است و هر کس که از حدود خدا تجاوز کند بیگمان بر خود ستم کرده است هیچ کس نمی داند شاید خداوند بعد از آن حالت نوی را فراهم کند پس چون می خود را به سر رسانند ایشان را به اساس مراجعت به وجه پسندیده نگه دارید یا ایشان را به وجه پسندیده جدا کنید و دو شخص عادل را از میان خود گواه بگیرید و شهادت را برای خدا پا دارید این از حکم خدا کسی به آن پنداده می شود که به خدا و روز آخرت ایمان دارد و هر کی از خداوند بترسد خدا برایش راه بیرون شدن از مشکل را فراهم می سازد و او را از طریقی که گمان نکند روزی می دهد. و هر که به خدا توکل نماید وی یعنی خداوند برای او بسنده است بیگمان گمان خداوند به سر رسسانیم فرمان خود می باشد حقا که خداوند برای هر چیز اندازت عین کرده است. و درباره زنانی از شما که از عادت ماهوار معیوسند اگر شک ورزیدید پس عده ایشان سه ماه است. و آنانی که عادت ماهوار ندیده بر ایشان نیز عین همین حکم است و زنانی باردار عیده ایشان تا هنگامی است که بار خود را بگذارند و هر از خدا بترسد خداوند در کار او آسانی پدید می آورد این حکم خداوند است که آن را بر شما نازل کرده است و هر از خدا بترسد گناهانش را از او می زداید و پاداش او را بزرگ می گرداند. شان را در جای کنیشی من دارید به اندازه وضع خود جایگوزین سازی. و با ایشان زیان نرسانید و اینکه که بر ایشان سخت گیری کنید و اگر باردار باشند به با ایشان نفقه بدهید تا هنگامی که بار خود را بگذارند یعنی فرزندشان تا شود، اگر برای شما و فرزند شما را شیر میدهند مزدشان را بدهید در میان خود به شیوه پسندیده مشوره کنید و اگر سخت گیری نمودید پس زن دیگری برایش شیر خواهد داد سوانگر باید مطابق به با دارایی خود نفقه بدهد و هر که روزی بر او تنگ شد پس باید از آنچه خدا به او داده نفقه کند خداوند هیچ کس را جز به چیزی که برایش داده است مکلف نمی و به خداوند بعد از هر سختی آسانی فراهم می کند و ای بسا از باشندگان شهرها که از حکم فرودگارشان و پیامبر او سرپیچی کردند. ایشان را شدیدن مورد بازخاست قرار دادیم و آنها را به عذاب بیمانندی عذاب کردیم و به این ترتیب سزای عمل خود را چشیدن و سرانجام کارشان زیان بار بود خداوند برای ایشان عذاب سختی را آماده کرده است پس ای صاحبان خرد که ایمان آورده اید از خدا بترسید خدا خداوند به سوی شما پندی را نازل کرده است و یا را که برای شما آیات روشن خدا را تلاوت میکند تا کسانی را که ایمان آورده اند و اعمال شایسته انجام داده اند از تاریکی ها به روشنایی بیرون آرد و هر که با خدا ایمان آورد و عمل نیکو انجام دهد ده خداوند او را به با باغهای داخل می‌گرداند که از زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و در آنجا جاودانه و برای همیشه بسر می برند بگمان خداوند به او روزیش را نیکو ساخته است خداوند ذاتی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آن در میان آنها همواره حکم خدا نازل می شود تا بدانید که واقعا خداوند بر هر چیز تواناست و اینکه واقعاً خداوند بر هر چیز از روی علم خیش احاطه دارد